حکایت یکی از وزرا معزول شد و به حلقه درویشان درآمد اثر برکت صحبت ایشان در او سرایت کرد و جمعیت خاطرش دست داد. ملک بار دیگر بر او دل خوش کرد و عمل فرمود قبولش نیامد و گفت معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی آنان که به کنج عافیت بنشستند، دندان سگ و دهان مردم بستند، کاغذ بدریدند و قلم بشکستند، و از دست و زبان حرف گیران رستند. ملک گفتا هر آینه ما را خیرتمندی کافی باید، که تدبیر مملکت را بشاید گفت ای ملک نشان خردمند کافی جز آن نیست که به چنین کارها تن ندهد حمای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخان خورد و جانور نیازارد سیه گوش را گفتند تو را ملازمت صحبت شیر به چه وجه اختیار افتاد؟ گفت: تا فضلی سیدش میخورم و از شر دشمنون در پناه صعت او زندگانی میکنم؟ گفتندش اکنون که به زل حمایتش درآمدی و به شکل نعمتش اعتراف کردی چرا نزدیکتر تر نیاری تا به حلقه خاصانت درآرد؟ و از بندگان مخلصت شمارد، گفت، همچنان از بچه او ایمن نیستم، اگر صد سال گبراتش فروزد، اگر یک دم در او افتد، بسوزد، افتد که ندیم حضرت سلطان را ضرب بیابد، و باشد که سر برود. و کمال گفتند از طلبون طبع پادشاهان بر هزر باید بودند که وقتی به سلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند و آوردند که زرافت بسیار کردند هنر ندیمان است و به حکیمان. تو بر سر قطر خیشتن باش و وقار بازی و ظرافت به ندیمان بگذار.